تا پیمان فطرتی را که از اونها در عالم زر گرفته بود از اونها مطالبه کنه دوباره دوباره اونها متذکر کنه که الستو بر بکم قالو بلایی که در عالم زر گفته بودن این بلا دوباره در دنیا بگن حالا آنانی که بلا را در دنیا در عالم زر به رقبت گفتند اونها به دنباله اون رقبت حتما بر نبوت نبی چون ربات ما این و بر ولایت امیر مومنان و ائمه علیه السلام هم اینها بلار گفتند و اینا شدن جز سعدا دقت بفرگید و آنان که توحید رو بر کراحت قبول کردند در عالم زر و نبوت یا امارت و ولایت امیر مومنان و ائمه رو قبول نکردند اینا شدن جز عشقیه بعد از اینهای امتحاناتی گرفته شد اینها دوباره امتحان برای بعضیشون تجدید شد اونانی که, آنانی که قبول شدن شدن شدن سعدا آنهایی که قبول نشدن شدن عشقی ها حالا این عشقی و این سعدا تو دنیا اومدن اومدن تو دنیا و خدا به واسطه بهترین مخلوقاتش و رسولانش این گونه لطف داره میکنه دقت بفرمید که نه تنها با آنان که با رقبت بلکه با آنان که با کراحت قبول کردند دوباره یک مهلتی رو به آنان که رد شدند و شقی شدند مهلت بده که اینا سعید شد و آنانی که سعید شدند به تو امتحان قبول شدند درجاتشون بالاتر بره حالا مشیت خدا این است که به چه کسی و چطور این گونه امیر ممنون می که خدای مطال انبیار رو برگزید به رسولان رو که اونها لیست عدو هم می ساق فطرته که بیاین و فطرت ها را اخس میثاق ساق کنن و بر اون عهدی ف... که قبلا ازشون گرفته شده بود آنان را متذکر و دوبارون عهد را از اونها بگیرند و یو ذکرو هم منسی نعمته نعمت های فراموش شده را به اونها متذکر کنن حالا جمله نعمت هایی که مثلا فراموش شده اینه که نعمت وجود نعمت عبودیت نعمت معرفت خدا نعمت عقل نعمت برکات الهی خیلی نعمت ها رو ما فراموش میکنیم انبیا الهی اومدن این نعمت ها رو به انسان ها متذکر شدن که بابایه انسان ها شما مثل حیوانات نیستید بهروریتون بالاتر از این هست. و رواقعت ما اینگونه گونه میفرمند که اگر انسان ها تحت تعلیم انبیا قرار نمیگرفتند یا در حد همون معرفت فتریشون باقی میموندند و بالاتر نمیمدند من چون به صورت خلاصه بگم مطالب سریع بیام جلو یا در حد همون معرفت فتریشون باقی میموندند و بالاتر نمیمدند یا نه نزول میکردند و در حد بهیمیت و حیوانیت فرو میرفتند کمان که جامعه بشری امروز هم وقتی از دستورات انبیاء و اوسیا الهی تبعیت نکرده میبینیم که در دره حیوانیت، و بهیمیت سقود کرده فرمود که یو زکرو هم منسیه نعمته و یحتجو علیه هم به تبلیغ وجود مقدس امام امیر مولان علیه السلام که انبیاء الهی احتجاج کردند انبیاء الهی آمدن مطالب رو با احتجاج و دلایل روشن رسوندن به مردم و انسان ها حالا یا مستقی من یا به واسطه امروز ما به واسطه برای اونها یده مستقیما فرق نمیکنه و یوثیر الله هم دفاع اینال و دفینه ها و گنجینه هایی که در اقول انسان ها بود دقت بفرمید به واسطه انبیا اثاره شد اثاره یعنی برانگیختن یعنی پربرشیافتن باربر شدن شخم زدن اینا همه کلمه اثاره یعنی با همزو سه نقطه که ثوره ثوره حتی ناس که میخوندن یا انقلاب ثوره یعنی تحول دیگرگونی تو لغت عرب هم همینطوره اثاره یعنی باربر شدن تحول دیگرگونی این دفینه هایی که در اغول بشریت هست به واسطه نبی و وسی اثاره میشه این خیلی مهمه ها یعنی اگه انبیانه بودن این اغول بشریت اثاره نمیشد نه کما این که کما این که که غیروایت ما هنوز اغول بشریت به اون تکامل کامل نرسیده به اون اثاره نهایی اون اثاره نهایی رو کی میرسه؟ در زمان ظهور امام اص اروانافده در زمان ظهور امام اص اروانافده حضرت دست مبارکش رو بر سر انسان ها و عباد قرار میدهد اغول اینها ها میره بالا بعد وجود مقدس حضرت به لطف الهی مطالبی از مطالب عقلی و علمی و بیست و پنج باب ان رو برای انسان ها باز میکنن که متحیر میشن انسان ها پس تازه اثارهی به ونای واقعی در زمان زور حضرت انشاءالله رخ میده اما یعنی در واقع کار امامه است دقیقت اینجای تذکرم بدین کار امام است کار انبیاس فرق داره با ائمه دیگر کار امام است اروان فدا کار انبیاس. یعنی این که این که در دعای امام رضا علیه السلام میخونیم برای ساعت مقدس امام از اروان و فدا که خاصتا برای ایشون این دعا رو انشاء کردن و این که در قنوت زهر نماز جمعه انسان مستحب معکده که این دعا رو بخونه و همچنین بعد, بعد از نمازهاشم در تقریبات این دعا رو بخونه این دعایی که بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اصل عبدک و خلیفتک به ما بهی، که و رسولت خدا یا اصلاح امر عبدت و ولیت را کن آنگونه که کار انبیاء و رسولت رو درست کردی یعنی کار پیامبرک ببخش امام اصر و آن فدا کار ایشون کار انبیاء است. فرق دارن با این می دقت دقیق کنین لذا این شعن نبوت در مورد امام اصرم هست صلوات الله علیه این دقت بفرمین این شعن نبوت که عبارت از اثاری اغول هست اون قسمت ها دیگه هم هستا یعنی لیست ادو هم میثاق هست یو ذکره هم منسیه نعمته هست همه اینا هست این وقتی ایشون انشاءالله ظهور میکنند و زمین رو از کفر پاک میکنند و پایه های توحید و عدل رو پایه میکنند این کار رو و نبی اکرم صلی الله علیه سلم رو انجام میدن که عبارت چیه اثاری اغول یعنی اثار اغول به طور کاملش کیس رخ میده در زمان زهور حضرت انشاءالله و لذا درجه تو میره بالا دفینه ها تا قبل از ظهور حضرت در اغول انسان ها خیلی خیلی بازم هنوز باز نشده مقدارش باز شده اصل باز شدن و اثاره اوغول و این که حضرت فرمودن که یو ثیر الله هم دفاعین الاغول دفینه های ها. یعنی تو اغول انسان های دفینه هاییست یه تو هاییست من و شما. که ما به واسطه این دفینه ها یا این چیزهای گرامبه ها ما میتوانیم به واسطه این گنج ها خیلی چیزها رو بفهمیم بالاتر از اینکه که الان داریم میفهمیم بالاتر از این چیزی هایی که الان داره می فهم... متوجه میشیم این در زمان زهور حضان انشاءالله صلواته علیه میده اما الان فعلا ما دو باب باب علم برون باز شده و الان به درجه ای که ما تبعیت از نبی و اوسیا او کردیم و عبادت خدا رو کنیم برامون اثاره اغول رخ میده یعنی درجات عقل میره بالا فهم میره بالا چیزهایی رو متوجه میشیم که در درجات پایین عقل کسی متوجه نمیشه دقیقا فرمودید؟ و هرچی این درجات عقل بالاتر بره و دفینه های بیشتر مشهود بشه قطعا انسان به لحاظ اینکه در روایت فرموندن الاغل و ماعوب در به الرحمن و که تو ثبت به جنان اغل خصوصیت آثارش این است که انسانها را به عبودیت عبودیت خدای رحمان و به کسب بهشت می پس قطعا هر چه دفعی نهای اغول بیشتر بازشه انسان در جهد عبودیت و نهایتا کسب رضایت الهی به بهشت سریع تر و درجات بالاتر را کسب می بر حال خدای متعال از طریق امریاه الهی و رسولش این کار رو در حق بندگان خودش انجام داده حالا نکته بعدی هم بگم که دفعه گذشته گفتم منطقه این دفعه مقداری تذکر بیشتر میکنم ببینید خانم آیون باب معرفت الله تو دنیا نبی و بلوسیه ما در عالم زهر مستقیما خدا رو مشاهده کردیم معاینه کردیم در عالم زهر اما اینجا عرض و به واسطی انبیا الهی و حجب نوری خدا که انبیا و هستند ما خدا رو معرفت پیدا می کنیم اسم دیگرش معرفت بل و صفاته معرفت بل و صفات تو دنیا ب... که در واقع بروز و تبلور این اسما انبیا و اوسیا هستند خدا تو دنیا طریق اینها خودشو معرفی می کنه این معرفی در دنیا دقیق کنید خانم مایون. این معرفی در دنیا با زمیمه اون معرفی در عالم زر به هم عرض بزرگ شما که جمع میشه بعد این دو که من با هم دیگه جمع میشه معرفت انسان و در واقع های جدیدتری از معرفت به انسان رخ میده در معرفت خدا در معرفت نبی در معرفت وسی و مغوله های معرفتی اگر کسی سراغ انبیاء الهی نرود این معرفت درست گیرش نمیاد چرا دارم این جمله رو میگم تو این دنیا سراغ غیر از نبی و وسیع الهی بری معرفت درست گیرت نمیاد چرا دارم میگم باز دوباره این تکرار میکنم تکرار میکنم به خاطر اینکه خیلی افرادی هستن که میخواهن شونه به شونه انبیاء بزنن و خیلی افرادی هستن که خودشون نسخه بدل انبیاء میدانند به ادعای این رو دارن که ها رو واصل به معرفت و حق می کنند آنها رو از وادی شریعت به طریقت و از طریقت به حقیقت می رسانند خوب دقیق بفرمید ادعا دارن که ما پیر طریقتیم ما قطبیم ما کسانی هستیم که می توانیم انسانها رو به معرفت خدا و واصل به حق کنیم این از اون جهاز که خلاصه شیطان از این طریق داره بر انسانها تسلط پیدا میکنه و راه انبیا رو ببنده. منظورم کسانی است که ادعای عرفان دارند. منظورم کسانی است که ادعا دارن که ما میتوانیم خودمان از طریق ریاضات و طی چله ها به معارفی برسیم. به معرفت‌های برسیم. نمیدونم اون دفعه اینو گفتم اینجا یا نه حالا اگه گفتم بفرمید که من تکرارش نکنم که جلسه دشگیر شده بود و خلاصه یکی از این اختاب دراویش و رفا برای کسانی که شرکت کرده بودن اینگونه گفته بود که راه معرفت به خدا باز آسونم هست و خیلی خودتون رو مقیعت به عبادات و تکلف به عبادات نکنید راه معرفت خدا دل پاکه از اون شباحات بسیار بسیار سنگین غلط لذان هجاب ظاهری مطرح نیست اصل باید هجاب باطنی نباشد دقیقی هر فتا قشنگ و گول زنند است و حتی اگر نماز خوندن برای شما سخته کاری رو میگم که به شما به جای نماز شما استفاده کنید. چون مخاطبین این, این آقایی که در از اختاب و درابیشم بود خانم ها بودن اکثریت خیلی باب تب افراد شده بود خیلی جالبه دیگه چون انسانها فطرتاً به دنبال کمال هن. حالا اگه رسیدن به این کمال علاز ظاهر یه مقدار آسون تر باشه و باب میل انسان هم باشه دیگه این مثلا به ما بگن به جای مثلا نماز خوندن به این شکل و با این که نماز صبح مثلا شما بجن که پاشید وزو بگیرید و نماز و دعا بخونید فرض کنیم بگن که تو همون رخت خواب که خوابیدید شما مثلا این ذکر مثلا ده بار بگو یاهو یاهو یاهو این کار نماز انجام میده دوید بخواب و بهترن نماز هم هستده و خیلی انسان ها این طوری عمل میکنن فکر میکنن از این طریق به معرفت خدا و رضایت خدا می رسند دقیق اینکه آی مولوی در اشعارش ادعای مهدویت نوعی رو داره و ولی نوعی رو داره، اینکه به هر دوری ولی قائم است، این ولی خواهن نسل علی خواهن نسل عمر که در اشعارش میگه اینها در این دیدگاه انحرافی عرفایی که ادعای عرفان دارند و میخواهند بشریت رو در واقع به حق متعالی برسونند، از این طریق حالا این چه میخواد؟ آدم نسل علی باشه چند نسل عمر باشه هرکی میخواد باشه این تیه طریق رو میتونه بکنه و دست افراد رو بگیره و اسم شده عارف و با بازار این تو چیزا خیلی شلوغ الان و خیلی در افراد گول میخونن از این طریق و اگر به کتاب تذکرت اولیای اتار شما مراجعه بفرمی در باب بایزید بستامیش نگاه کنید شما که عرض بحضور شما که در باب بایزید بستامیش آقای اتار در این کتاب نقل میکنه که بایدید به مقامی رسید که امام صادق به او گفت تو به ما دیگه احتیاج نداری تو دیگه واسطه به حق شدی و بایزید به مقامی رسید که از انبیا بالاتر است اینه که دارم میگن برید مراجعه کنید ببینید دیگه چرا بالاترن عرفا میگن ما بالاتر از انبیا هم می‌رویم و پرواز میکنیم چون میگویند انبیا مانند عقابانی میمانند که اینها در تیه طریق و پرواز به آسمان ملکوت تناوب به پاشون بسته شده که مجبورن که مخلوقات و انسان ها و بندگان خدا رو هم بکشن چون سقالت خوب دقت کنین چون سقالت هدایت دیگران و مراعات در واقع سطح فهم اونها رو بد بکنن مثل عرفا آزاد نیستن که در آسمان ربوبیت و عرفان الوهیت پرواز کنن اونها میتونن عرفا برن لذا این جمله که آی با یزید بستامی گفته لبائی افضل من لبائی محمد صلی الله علیه و سلم نگاه کنید پرچم من در هدایت و رسیدن در معرفت بالاتر از محمد صلی الله علیه و سلم است ها و ایشون میگه من به مقام رسیدم که شاگردان من مریدان من ارزوز قسیم نار والجنه مقسم بین بهشت و جهنم من ببینید چه جملاتی را آه شما ببینید چه جملاتی در باب معرفت الهی و عرفان دارن میگن ما متاسفانه ما چون ندیدیم حقیقت را افسانه زدیم ما انبیا الهی و اوصیاء الهی را نشناختیم و اینکه باب معرفت الله در دنیا نبی و وصی است خدا این باب را قرار داده از جای دیگه غیر از اینها بخوای بروی شما به معرفت واقعی و عبودیت خدا نمیرسی حالا بریم سمینار رو تفاسیر بزنیم برای شعر فلان شاعر و کتاب فلان شاعر رو که اکثریت عرفایی که اکثریت عرفایی که ترین ها صحبت کردن شما نگاه کنید خط فکریشون با هدا هدى عالم سلام تضاد داره که من نمیخوانم در مقامی نیستم که بخوام یک به یک اینها رو برای شما آنالیزش کنم و بگم مثلا آقا این فلان اینو گفت تو این شعر اینه گفته اینجا این که یکیشو به شما اشاره کردم دیگه که همون داستان موسا شبان بود که مولوی گفته که از ساخت ذهن خودشه و در اونجا پیغمبر خدا، پیغمبر اولو العزم خدا محکوم شده و اصلا کار پیغمبر اولو العزم خدا محکوم شده که خدا به او خطاب کرده تو برای وصل کردن آمدی نه برای فصل کردن آمدی پس بذار هر جو بخواد مردم وسپشان به من پس تو من نبی برای چی اومده وس؟ <تصفح> پس پیغمبر خدا برای چی اومده؟ این یه نمونه دارم ارز میکنم ما. چون در دیدگاه ارفان بشری من اسمشو میذارم و صلح کل در دیدگاه ارفان بشری اصلا دیدگاه دیدگاه وحدت وجوده در دیدگاه عرفان بشری این هستش که هر کسی در تیه طریق های میتواند به مقاماتی برسد که انبیا بیا رسیدن و بالاتر از اونها برون و اگر کتابی الان نوشته شده و بحثای الان داره گفته میشه تحت عنوان بست تجربه نبوی از همین مقوله است که ما می توانیم تجارب نبوی رو بس بدیم و آنچرا که انبیا به وحد رسیده اند ما با تجاربی و با یک روش هایی که روش های عرفانی این رو بهش دسترسی پیدا کنیم این تذکر بود که بر اینکه حواسمون رو جمع کنیم خلاصه دو چاره این مقوله مطالب نشویم که این تعارضات هم قطعا و یقینا پیش میاد خب به دنبال این بحث من البته بحث هم تا یه جا می برم جلو بعد اگر عرض و حضور شما که سوالی بود بفرمید شما وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمود که حضرت ابراهیم در روایتی است که حضرت ابراهیم فرمودن که اگر اون معرفت ببخشید اگر نبوت رو خدای متعال در میان انسان ها قرار نمیداد حضرت ابراهیم هم با اون مقامش حضرت فرمودن که بر همون معرفت فطری باقی می ماند و بشریت بر مقام فتری، معرفت فطری خودشون باقی میمونده بحث بعدی من پس بحث من تو قبلی چی شد؟ بحث قبلی من این شد که خدا، خدای متعال باب معرفت های جدید و اثار اغور رو در دنیا به باسته کی قرار داده؟ انبیا و اوسیا الهی نه کسان دیگه گول نخوریم خلاص این مطلب خب به خاطر اینکه در این جنب جلو بریم چیکار رو کنیم یک پیانبران رو بشناسیم اوصیه رو بشناسیم طبعیت از آثارشون کنیم و عوابن و نواهی اونا رو انجام بدیم که عوابن و نواهی خداست. در غیر این صورت وقتمون رو تلف کردیم در غیر این صورت سرمون کلا رفته فکر میکنیم وقتی عبادت خدا رو میکنیم فکر میکنیم که معرفت خدا رو به دست تا اینجا سالی نیستش تا اینجا یه بحث خب الحمدلله خدا رو شکر یکی دیگه از مباحثی دیگه تو این بحث نبوت من عرض کنم که دفعه پیشم یه تذکری دادم دوباره اینجا تذکر بدم برم تو بحث بعدی باز و اون بحث آیه مبارکه 164 سوره آل امران بود که خدای متعال اینگونه می فرمن لقد من نالله علالمؤمنین اذبع ففیهم رسولن من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل و لفی ظلام مبين خدای متعال مننت گذاشته این منات یعنی نعمت خیلی بزرگی که خدا داریم میگه مننت میذارم بر کی بر مؤمنین نه بر مسلمین ببخشید نه بر افراد معمولی بر مؤمنین تازه مؤمنین هم فرمودن یعنی شیعیان امیرالمؤمنان علی سلام و علی خدا انو سلام خدا منت گذاشته بر مؤمنین و انسان‌هایی هایی که ایمان آورده به خدا به واقع و رسول او و اوسیا او به چی اضبع ثفی هم, هم که رسولی را در میان انها مبعوث کرد من انفسهم هم که این رسول الاز هم جنس اون هاست. من انفسهم هم هم جنس اون هاست. اما این تذکر ما همیشه دادیم که بدانیم که انسان اشرف مخلوقات نیست بلکه اشرف مخلوقات به شکل انسه اینم یه جمله انسان اشرف مخلوقات نیست بلکه اشرف مخلوقات به شکل انسه در ذیل این آیه مبارکه حضرت زهره سلام الله علیها فهمودن ما این گونهم این آیه رو می و تفسیر میکنیم کنیم فبعث از فیهم رسولا من انفسهم فرموده من انفسهم من انفسهم بعدا اینجوری میخونیم ما یعنی چی؟ یعنی خدای مطال من دو بر مؤمنین آن هنگامی که در میانه ها رسولی را برانگیخت من انفسهم از نفیسترین چیزها از نفیسترین عرض حضور شما که مخلوقاتش از بهترین چیزها من انفسهم یتلو علیهم آیاته این نبی که منت گذاشتیم بر شما نه تنها کتاب خدا و کلام مرا به شما میرسانم که این هم یه لطف بزرگی است کلام الله که کلام الله هم ثقل نبیه ها دقت بفرمایید کتاب خدا و قرآن هم ثقل نبیه اینکه پیامبر فرمود انی صلی الله علیه و آله فرمود انی تارکون فیکما ثقلین کتاب الله و اترتی اهل بیتی خوب دقت بفرمایید قد فرمودن که در روایتی که قرآن فقل چیه اکبره و اطرت من ثقل اصغر اما خود چی اطرتشون ثقل اصغره اما خود هم کف قرآنه خیلی شأن پیامبر بالا صلی الله علیه سلم خب حالا دقت بفهمید خدا مننت گذاشته به مؤمنین که پیامبر رو مبعوث کرده از نفیسترین چیزها کل گل سرسبد خلقتش رو در میان مؤمنین فرستاده از عالم عرش بر عالم فرش یک که او چه کند به واسطه او خدا کلام الله رو هم به ما رسونده که خود کلام الله هم شعن نبیه این هم دقت داشته باشین در بحث قرآن و اهمیت قرآن که افتخار احلبید به قرآنه حالا این قرآنی که خودش اصلا به تنهایی ثقله و ثقل اکبره و خیلی گرام به هاست که خدا بر مؤمنین و انسانها ها اصلا به قرآن منت گذاشته که فرستاده حالا یتلو علیه هم آیاته آیات خدا رو بر اونها میخاند چون قطب الخطاب قرآن کی بوده؟ پیانبر الله علیه وسلم. و یوزکیهم هم انسانها رو تذکیه کند از چی؟ از آلودگی‌های های فکری اخلاقی و اعتقادی این دفعه پیش گفتم و فسر دارم میام جلو و یعلم همون کتاب و الحکمه و تعلیم بدهد نه تنها یتلو آیات رو بخونه و درست برسونه بلکه یعلم همون کتاب و الحکمه بلکه این کتاب رو تعلیم بده و آن چه که در توخوم این کتاب است در بوتون این کتاب است از معارف الهیه رو در حدی که مشیت خداست دقت فرمین در حدی که مشیت خدا و ازن خدا به اوس به انسان ها برسانن چون این کتاب کجا تعلیم نهایش میشه گوش کنین کجا این کتاب تعلیم نهایش میشه کجا بفرمین احسن و لذا همین نکته بعدش همین رو بگم اضافه تر نسبت جرث گذشته دو تا نکته خواستم میگم انفسه مو خواستم بگم که انفسه هم خوندن ای که این قسمت که در روایت از که وجود مقدس امام از اروان و فدا انگامی که ظهور میکنن فستات یا خیمه هایی میزنن در زیر خیمه ها جوانان عجم عجم یعنی غیر عرب حالا عره کشوری نه فارسی در زیر خیمه ها جم میشوند حضرت تعلیم قرآن میدهند دقیقه باب های از قرآن رو باز میکنن که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امیه هدا اینگونه نشده دقت میفهمید؟ یعنی کار پیامبر صلی الله علیه و سلم که مشیت خدا اینطور بوده اتمام و اکمالش به وجود مقدس امام از اربان فداست یو علم کتاب و الحکمه که کتاب خدا را به واقع نبی این کار را که تعلیم کتاب تعلیم کتاب خیلی مقام بالاییه چون خیلی قرآن نزد خدا عزیزه خیلی عزیزه کلام الله خب دقت بفرمین حالا این تعلیم و این معارف الهی رو خدا لطف کرده از طریق نبی به ما داره تعلیم داده میشه و طریق وسیع حالا اگر کسی اگر کسی اومد اینه کرد که من میدانم این قرآن رو خدا منظورش چیه در واقع خواسته پا تو کفش نبوبت کنه و اینجاست که اگه کسی قرآن رو به رأی خودش تفسیر کنه جایگاهش آتش جهنمه خیلی باید دقت کرد که تفسیر و تعویل و قرآن رو بخوای از خودت بگی آقا منظور آیه این بوده دخیل فرمودین چه عرض میکنم برای همینم تفسیر و تعویل و حتی ترجمه قرآن به این آسونی نیست آیاتون باشه توصیه‌ می‌کنم تو, تو جلسه قبل اون آیه به وجده که ظالما فهدا رو وقتی گفتم دیدی جمعیت خانم‌ها تشریف داشتن یا نه جمعیت موندن تو ترجمه حتی و وجده که زالن فهدا و در نهایت به کلام مبین قرآن که ما صدق علیه السلام بود ما گفتیم منظور خدا چی و وجده که زالن فهدا یعلم کتاب و الحکمه تعلیم می دهد آنان را کتاب و حکمت و انکانو من قبل و لفی زلال مبین حد چند که اینها قبل از نبوت در زلالت آشکار بودن قطعا در زلالت بودن انسان ها و قطعا جامعه بشریت و قبل از بحثت نبی طبق کلام امیر مؤمنان سالاتولار علیه که انسان ها در چه عرض بحضور شما فساد های اخلاقی و اعتقادی دچار شده بودند که حالا کم کمش رو زنده بگول کردن دخترها و خونریزیها برای ها بسیار کوچک و فسادهای های اونچنانی اخلاقی رفتاری تازه این انسان ها بعضی از این انسان ها پیامبر گذشته هم دیده بودند یعنی ببخشید شنیده بودند که اوصیاء پیامبر گذشته هستند و قرار پیامبر آینده بیاد یعنی ما در دوران فترت بین رسول بودیم یعنی بین دو تا پیامبر حضرت عیسی علیه السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که 650 سال بوده تو این 650 سال حضرت عیسی علیه السلام 12 تا جانشین داشتند که شمعون صفای کش بوده که شمعون صفا میشه جد پدری حضرت نجس خاتون مادر امام از و نفت حضرت نجس خاتون شمون صفا یکی شیشون بوده تازه بشریت بین 650 سال اینها بودن ولی با این حال بشریت بازم رفت در قهقره حالا در این زمانه کانو من قبل و لفی زلال مبین هرچند که این انسان ها در زلالت آشکار بودن و به واسطه نبی عرض و حضور شما که اینها از زلالت گمراهی بیرون اومدن تسکیه شدن و کتاب به تعلیم داده شد و حکمت به این ها داده شد و خلاصه خدای متعال بالاترین نعمت هاشو که داره منت میذاره و این نعمت ها بر انسان ها و اجنه هر دو تصریحه از حضور شما که جاری و ساری کرد این هم یک نکته دیگه که خواستم در مباحث دیگه بگم یک دیگه هم مباحث دیگه در بحث بح بسه عرض بزرگ شما که این سوالی هست بفرمایید بله بله بله بله خب همین نکته من میخوام بگم دیگه زود ما یه کلمه رو ببینیم حکم اطلاق کلیه نبندیم این تکریم بنی آدم اصلا سجده و احترام مثلا شیطان بر آدم میدونیم در چه باب بوده به خاطر خصوصیت ذاتی تا آدم بوده یا نه برای چیزی بوده فکر کنم دیدید اینو تا حالا فکر کنم برای چی بوده خدا امر کرد که اینطور احترام بگذار بر حضرت آدم و سجده کن و احترام کن تکریم کن خب میدونم چرا این کار خواهد چرا دستور به این کار داد الله. چون در حواتی که در صلب حضرت آدمانی سلام در زمر بنی آدم اهلوی تنون سلام بودن خدا بر اینا احترام بگذار لذا شیطان همین جاست دیگه چون ولایت علی ابن عبی طالب حسنی پا من دخل حسنی امن عبابی همین عبابی همینجا هم از شیطان حب و بغز ببخشیم بغز داره همین جاست که شیطان میگه من نمیتوانم انسان هایی که بر صراط مستقیم هستن اونها رو اقوا کنم صراط مستقیم صراط علی نبیطاله و الائمه المعصومین سلام حالا این کرم ناب بنی آدم هم شما نگاه کنید من چون دقیق اون یادم نیست نمیخوام در این مقامی که اینجا نشستم دارم تعلیم میدم خدا که اشتباه بگم ولی ظاهرا این بنی آدمی که کرم ناد اینطور نیست که هر بنی آدمیه لزوما همه انسان ها در اثر عبودیت میتونن فرشته بالاتر برن و در اثر قصاوت و گناه می توانند از حیوان پست‌تر بشن الان بل هم ازل دقت فرمودین این انسان این گونه است اما اون انسانی که خلاص اشرف مخلوقاته وجود مقدس نبی و اوسیای نبی علیهم السلام هستند ها به دنبال اون حالا همین خلیفه الله را مختصاً بحث کنم که بدانیم که همین بحث بود اتفاقاً که برای همین آنان داشتم میگفتم که حواستون باشه که هر کسی خلیفه الله نیست. اینکه ما ادعا کنیم ما می توانیم به مقام خلیفه اللهی برسیم از این ادعای خیلی خلاص گنده است. و اصلا این لباس برازنده پیر لباس اصلا ما برازنده این لباس نیستیم این اینطوری بگم. اصلا این لباس خیلی بزرگی برای من و شما. ما خلیفه الله نیستیم. خلیفه اللهی به جلال الهی انی فل فلارض خلیفه جائل خلیفه خداست. و خلیفه کسی است که باید از سوی اون کسی که او رو به خلافت برانگیخته هایی داشته باشه و فرمدا ما خلیفه های خدا هستیم ما کسی هستیم و از سوی خدا در روی زمین به عنوان جانشین انتخاب شدیم. باید سنخیت اللهازه این که این مقام رو میخواد به دست بیاره نبی و اوصیاء نبی حتما سنخیت نه اینکه چون با خدا که هیچ کاری نمیتونه سنخیت داشته باشه اللهازه این مقام رو خود به عهده بگیره باید یه شؤونی داشته باشیم شؤونو هر کسی نمیتونه داشته باشه و ماها دهن اون میچاتن اینکه بگیم ما خلیفت الله میشیم خلیفت الله این مقام خیلی بالاییه که به استفا و اشتبای خدا چون جل میکنه خدا همده که الله استفا آدمه و نو همینطور اینالله ارز بود انی جالون فل ارز خلیفه پس ما هم خلیفت الله نمیتونیم بشیم ولی متاسفانه این صحبت ها تو جامعه ما زیاده که ما خلیفت اللهی ما مقام و مقام های خلاصه ما خدایی میشویم ما مقام های بالا میرسیم از این حرفها اینا این ها قشنگه شعره ولی خیلی دو جامعه ما زیاده و افرادم بر این اساس تفکرات و تعقلاتشون رو و حتی متاسفانه معلمان دینی و معلمان ادبیات فارسی ما در دانشگاه و دویرستان ها که من یک جلسه بود برای مدرسین اردو دین و زندگی یه منطقه آمدش صحبت روی صحبت میکرم زهنا اینا متاسفانه اصلا آلوده از این حرف گفتم گهتم شما میخوای این صحبت ها رو برید بگید به بچه ها این بچه های شیعه ما که وقتی من تعارضاتو براشون باز میکردم میموندن از جمله همین موسی شبان از جمله همین خلیفت الله و جمله موابس دیگه حالا در خدمتشون بودی کسی خیلی بد دقت کرد که خلاصه خدای متعال ما رو به اینها سپرده اون تو بشر میخواد بگی من خودم برای خودم کسی من خودمم میتونم این راهو طی کنم اگه از این طریق اومدی درسته اگر از این طریق اما اگر از این طریق نیومدی بدون شیطان دست سواری میگیره سوال دیگه هست خب عرض بزرگ شما که یکی دیگه از اون مباحثی که ما حالا چند تا مبحثی که انتخاب کردیم که خدمت شما خانم و آقایون بگیم یکی دیگه از اون مباحث بحث امی بودن پیامبره یکی از القاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نبی الامیه این نبی الامی یعنی چی که اکثرا بی سواد شد در جهان معنی میکنن اما در آیاتی که آمده است در سوره مبارکی عراف آیه 158 و 159 الَّذِينَ يتبعون الرسول نَبی الْامِی فَآمَنُوا بالله وَرَسُولَ نَبی الْامِی این لقب رسول امی یعنی چی ما ها گای اوقات میگیم رسول بی سباد پیانبر بی سباد بوده دقت بفرمیم سواد نداشته در حالی که این کلمه قلطه اصلا معناش رو اینطوری ما برداشت کنیم بلکه معنای امی به معنی درس نخونده. یعنی پیش کسی او تعلیم و تعلیم نداشته به این که تعلیم، تحت تعلیم قرار گرفته باشه او استادی نداشته معلم پیامبر صلی الله علیه و فقط خدا بوده خدا پیامبر تأدیب یافته امیرالمؤمنان سلام فرند و پیامبر تأدیب یافته خداست و من تأدیب یافته پیامبرم صلی الله علیه و و و این آیه که در سوره انکبوت آیه 48 و ما کنت تظلم من قبله من کتاب ولا تخف تو به یمینک اذن لتراب المتلو ای پیامبر تو پیش از این پیش کسی نه کتابی خاندی نه با دست خودت رفتی پیش کسی نوشتن یاد بگیری ما این کار کردیم تا در این صورت اونهایی که باطلگرا هستند دنبال بحانه هستند خلاصه ایجاد شپه و باطلیت مکنند از تصریح برای این که پیامبر نزد کسی درس نخوانده و تنها تعدیبی یافته خداست چون اگه غیر این صورت بود ما پیامبر وام گیرنده بود چی؟ از بشریت از انسان های دیگه پس به طبیت این مسئله میگفتن پیامبر ها از خودش ندشته که خدق ب فهمید البته این نکرم شما بدونید تنها پیامبر ما اینجور نیسته سالله سلام تمام هم بیا هم تمام هم به این معنم مینکن اینها چی؟ اینها قطعا و ی یا از طریق مستقیما از خدا گرفتن یا به واسطه، یا از یه نبی دیگه گرفتن یعنی مسیرش مسیر الهیه مسیر عرض و حضور شما اینطور نیست که یک بشر معمولی رفتن چی تعلم داشته باشن قد پرمودین خب بله بله یه بیانم امول غراست که مثلا اهل مکه بود ولی این چیزی که بیشتر تسریح داره آیات تو دیدگاه شیعه ما اینه که همین درس ناخانده چون این شبه رو ما باید برطرف کنیم و ما هم چون معمولا تو کلمهات این گونه رو تو فارسی تا میگیم طرف امیه امموله یا امموله یا امموله، اممیه به معنای ارز حضور شما که درس ناخانده نافهم کمفهم این طوری معنی می‌کنیم دیگه دقت میفرمید؟ بله خب این هم یه نکته نکته بعدی در رابطه با پیغمبرشناسی شناسی ما این هستش که پیغمبرشناسی شناسی ما با پیغمبرشناسی شناسی اهل سنت تفاوت داره امام صادق علیه السلام فرمودن که ما با اهل آمه فقط و فقط در کبه مشترکیم در زواهر مشترکی ما مثل توحید و نبوت و عربواز معاد و عدل و قرآن و اینها اما وقتی به بطن و بوتون دیدگاه اینا میرین میرین توحیدی که اونا میگم توحیدی که ما میگیم تفاوت واسه نبوتی که اونا میگن و نبوتی که ما میگیم تفاوت واسه امامیتی که اونا میگن با که ما میگیم خیلی تفاوت هاست. در نبووت اهل سنت که من توصیه میکنم به خانم آیون این کتاب معرفت نبی رو این کتاب معرفت نبی مالا آقای محمد بیابانی اصخوی این کتاب تهیه بفرمایید بفرمید حالا اینجا هم کانون میتونه تهیه کنی این کتاب رو در انتهای این کتاب این بحث رو مفصل گفته تو این کتاب که خودش هر دو نکات جالبی رو در این کتاب بحث شده یکی از که چند تا کتابی که یکی این کتابه کتاب بسیار خوبیه در مدارک اهل سنت این گونه آمده است که هنگامی که پیامبر صلی اللہ علیه و وسلم در کوه هرا به نبوبت مبوض شد گیت شد متحیر شد که اه اصلا من پیغمبرم این موجود عجیب چی بود که اومد به من گفت پیغمبری و لذا یا آیه ها المدست قر قنف انذر اینگونه مناکدن در گاه های احل سنت و آمه که پیامبر با ترس و لرز با لرزش بدن آمد خانه و به حضرت خدیجه سلام الله علیه ها گفت که خدیجه من همچین واقعی واقعیه برام اتفاق افتاد و ایشون میلردید و جناب حضرت خدیجه سلام ها یک فرمود به ایشون گفت که دسترونی زملونی منو بپوشون منو بپوشون بعد یک عرض و حضور شما پتوی یا, یا مثلا یک گیلمی یا چیزی رو پوشون به بعد گفت چه دیدی خلاصه گویا همچین واقعی اتفاق افتاده و من مونده من پیغمبرم و جناب خدیجه سلام الله علیها ایشونو بردن پیش برقت ابن نوفل پسرعموی خودشون که یک راهب یهودی گفتن که هم سلام همچین چیزی میگه بعد برقت ابن نوفل گفته اوناتو بزن کنار اوناشو بذات کنار نگاه کرد که یک مهر سبز رنگی روی شانه پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نضافه اون ندا کرد یا محمد تو پیغمبری به خودت نمیتونی پیغمبری پیغمبر شدی تبریک میگم کن. نگاه کنید این نوبوبت شناسی رو نگاه کنید ما جالبه در کتاب های تاریخ شناسی و نبی شناسی کتاب این بحث اومده این اومده یعنی بچه دوست جوانان ما عزیزان ما تو دانشگاه ها تو بعضی موقع مباحث اعتقادی نبوتی این دیدگاه رو میخونن دیدگاه اهل سنتی در حالی که در دیدگاه شی اینگونه است که پیامبر صلی الله علیه و آله و, علیه و قبل از رسالتشون نبی بودند نبی بودند قد بفهمین فرق نبی با رسول چیه نبی در واقع نبی این توی که در آباد می فرمان وحی رو می ولی ملک وحی رو نمیبینه. و بعد هم رسول این است که نه ملک وحی رو میبینه ملک وحی رو میبینه و مستقیما با او ارتباط داره یکم مشخص ها اینه دیگه این که رسالت به احده اوست ولی نبی رسالتی به احده نداره در روایت ما این گونه نقل است که که وجود مقدس پیانبر صلی علیه قبل از رسالت نبی بودن و لذا آماده می شدن بر رسالت آماده می شدن بر رسالت و حتی حتی مطالبی که مخصوص نبوت هست که اون دفعه ارز کدم عاشق عباس قومی رحمت الله علیه در کتاب منتهی آمال می فهمد که حلیمه سعدیه این بانوی مکرمه گاهی بوقات که در عرض وضور شما که حضرت پیامبر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم میوردن بیرون شهر میدنید جوان بسیار زیبایی با پیامبر هستن سوال میکنید یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم این چه کسیست میفرمود که یا حلیمه این روح القدس است این روح القدس است که عرض وضور شما که برای عرض وضور شما که نگهداری معمور نگهداری و حفظ و تعلیم منه روح القدس خب بسیار مهمی مسئله که عرض وضور شما که روح القدس که این در واقع ملک مخصوص الهی هست که همین تنظر تو و روح فیها به ربهم رب من کل ام که الان در خدمت امام اصر فداست یعنی میخوام بگم وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه وسلم اینطور نیست که در دیدگاه اهل سنت این گان ایشون خیلی تعجب کرده که مثلا عرض خود شما که یهو مثلا یه منصوب شده به نبوودت بلکه روایت ما اینگونه گونه که پیامبر در چند جا تبلرز برشون آرز شده یکی جای بوده که روایت من دارم تصریح می کنم میگم یکی جای بوده که مستقیما با خدا صحبت کردن خودشون بودن با خدا لذا عظمت این ارتباط بدن عرض و حضور مادی پیامبر رو بدن مادی پیامبر اینقدر این روح پیامبر عظيمه بدن مادی پیامبر رو به به میانداخت. می انداخت چون مستقیما با خدا صحبت میکردند یه سری روایت ما اینو میفرماند و در روایت دیگه ای ما میفرماند که وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم هنگامی که جبرئیل رو تا حالا به شکل واقعی او ندیده بود تا حالا به شکل واقعی ندیده بود هنگامی که هیئت ش... واقعی جبرئیل رو مشاهده کرد وجود مقدس پیانبر الله علیه سلم از عظمت خلقت جبرئیل که عظمت خداست به که ابلاغ نبوت شد رسمند لذا وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه سلم ارز وضع شما که بدنشون شروع کرد به لرزیدن بعد روایت ما میفهمن هنگامی که اینشالله خود روزی کنه ما بیست افتوم رجب روز مبعه است خدا توفیق به در صحب زودی رو در قاره حرا بودین با سری دوستان خیلی با سفاست اون وقت هنگامی که از, از طبق روایت از که قاره حرا تشریفی مردن پایین تا مکه تمامی سنگ ها خاک نبات گیاهان همه بیانبر تبریک میگفتند و روایت ما نگاه کن چی جوری <تصفيق> چنان دیدگاه نبوتی ما با نبوتی اهل سنت که به او تبریک میگفتند که بر این نبوت و بر این مقام بسیار عالی وقهنگام میگم که ختمت حضرت خدیجه رسید اعلام کردن بعد از خدیجه سلام الله علیها اینطور نبوده که آقا تو دیدگاه من اینکه انگار حضرت خدیجه سلام الله علیها عرض شما که بعد از پیامبر آقا با پیامبر آشنا شد خدا پرست شد عبادت کرد نه هم امیرالمومنان صلوات الله هم حضرت خدیجه سلام الله ها که در واقع حضرت خدیجه سلام الله ها زنی است که جز زنان مکرمه بسیار بالای نزد خداست که او باید حامل حضرت زهرا سلمانه ها باشد او هم مقامش نسید ابتدای خلقت ابتدای تولد مبهده بوده و در کنار امیر مومنان با پیانبر صلی الله علیه و, علیه و, علیه و سلم قبل از بیست پیامبر بر دین حنیفیت حضرت ابراهیم عبادت میکردند تباید بفرمید شما نگاه کنید که تو مداره که اهل سنت چقدر حضرت خدیجه رنگه؟ نگاه کنید که حضرت عبو طالب چجور برخورد میکنن نگاه کنید که پیامبر رو چجوری قبل از بئصت معرفی میکنن چون قائلا که اسمت پیامبر اسمت نسبیست یعنی قبل از نبوت پیامبر اسمت نداشته و زیر خطاهای هم میکرده ما قائلیم از بد به تولد پیامبر نبی بودند و اسمت داشتند و بودند خیلی تفاوت دیدگاه است. دقیقا می خب اینم یه نکته دیگه جانم می فرمین یعنی در واقع آمادگی پیدا می‌کردن برای رسالت الان تصریح بله در چهلی سالگی به رسالت مبوض شدن چلسالت. اگر نه این مقام نبوت رو داشتند بله دیگه بعد به تولد که که حضرت عیسی علیه السلام هنگامی که به دنیا آمدن گفتن اینی عبدالله اتانیال کتاب الحکمه یعنی ارتباط وحیانی چه طریق روح القدس چه طریق وحی بوده براشون منتها اینکه رسالت و عللا دیگه جبریل رو ببینن کوچیک گفتم در رسالتی که نشوناشینی که ملکه وحی دیده میشه و مستقیما دیگه ارتباط ایجاد میشه اونجاست که در واقع عرض شما رسما شروع میشه اینطور نیست که خلاصه تو دیدگاه ما این باشه که پیامبر مثلا اخه دیدگاه اینه که تو دیدگاه روشن فکری که نمیخوام اسم ببرم که بعضی از نویسندگان متاسفانه به انحراف نوشتن نوشتن مثلا این که پیامبر پیامبر شد علتش این بود که شب های مکه آسمان و پرستار مکه چوپانی پیامبر و انزال او از مردم و رفتن به بیرون شهر اینا دست به دست هم داد مثلا تا پیان شد چی پیان بره؟ دقات میفهمیم از ما این چیزها رو مدخلیات نمیدونیم شب مکی و آسمان پر ستاره و کویره نمیدونم عربستان و نمیدونم انعضال از مردم و عرضضور شما که قاره حرا و چوپانی و اصلا اینا چیه اصلا؟ ولی شما میبینی که هست اینطور گفتند در دیدگاه های انهرافی نبوتی اینا رو گفتند متاسفانه و بعضی ها هم اونا رو تکرار میکنن هم اونا رو میکنن همین شده پایگاه و پایه های اعتقاد نبیشناسیشون بر انسان ها خب ما اون چون ظاهرم به من گفتن که تا ساعت هشت و ده دقیقه جان رستنیم تا چقدر آقا من چقدر دیگه وقت دارم بله یک رویه دیگه من وقت دارم خب تا اینجا خانمه آیون سوالی هست که ما حتی تا اینجا همینطور بحثات رو گفتیم اومدیم جلو بفرمید. که حتی یه ده دقیقه یه رو یا این وقتی که باقی مونده اگه سوالاتی باقی مونده بفرمی بعد یه بحث دیگر رو بگیم باید بفرمی میفرمند آها میفهم چه اشکاری داره که یه پیامبری قبل از نبوتش در گمرای زلالت باشه خود شما اگه به عقلتون رجوع بفرمید یا ما عقلا ما کسی را که پیش زمینه زلالت و گمراهی داشته باشه بخواد هدایت و رحبری و اسوه بودن رو به عهده بگیره گاهی اوقات باهاش بخوایم برخورد کنیم خیلی خیلی صعب کن تو خودت هم کمتر از ما آلوده نبودی یا تو قبلا خلاص این کارها رو میکردی حالا واسه ما داری مثلا اصلاً گوجه ما رو من تو درست میگی چه چه فرقی با ما داری کی گفت اصلاً تو پیغمبری مثلاً دارم حالا برفر اثباتم هم کنه ولی اون پیشینه زلالت و گمراهی هر و حضور شما که در ذهن انسان ها و دیدگاه انسان ها اصفه بودن و بودن نبی و وسیع رو میاندازه خیلی شانش رو میره پایین مثال بزنم مثال بزنم ارز بزرگ شما ما اگه سابقه بنده این بوده که یه مدتی قاچخشی بودم مواد مخدر یه مدت ماشین میداز دیدم اینشون میخنده یه مدت هم, یه مدت هم کی... جیبور بودم یه مدت هم ارز بزرگ شما که کلافردری کردم خوبه دیگه؟ یه چندین سالی ما زندان بودیم و این پیشینی حالا بعد هم مدتی امادیم توبه کردیم امادیم جدو نوبت درست میدیم شما میاییم پای درست ما بشینیم جواب بفرمیم میاییم بشینیم نمی چی؟ همینه وقانم همینه دیگه میگه به چه اطمینانی این روحش آلوده است هرچند که خدا میبخشه کسی توبه کنه ولی علم معلومه که قابل قیاس نیست با نو بعدسن ما که ولی در همین مقام بسیار کوچکی که ما داریم و شما نمی‌ان چیز بکنید قبول نمی‌کنید چه برسه اون تو اون مقام عظیم وقت بحث بعدی ایجاد میشه شما میگی چرا من نشدم پیغمبر چرا شما چه فرقی داریم پیامبرم مثل ما بوده مثلا قبلش تو زلالت گمراهی یا اینها بوده ما اینه هم دیگه حالا چرا خدا تو رو انتخاب که ما رو انتخاب نکرد و یکی از نکاتی که انسان ها در برابر پیامبر صلی اللہ علیه و, علیه و علیه و سلم سر تعظیم فرود آوردند، این بود که پیامبر رو با عنوان محمد امین میشناختند محمد صدیر میشناختند و او جز حلف الفضول بود این جز جوان مردان بود ازش اصلا رزیله ندیدند. ازش اخلاق‌های زشت و پست ندیدن بزرگواری همش دیدن میدونم این داستان دیدید یا شنیدید که پیامبر در سن کودکی در خدمت مکی که بودن بعد با بچه های مکی خب دوست بودن آشنا بودن یه شخصی بلا میشه میاد مکی تاجر بوده کیسه پولش توی راه میفته و این کیسه پولش خلاصه بچه ها پیدا میکنن کیسه پولارو. رو بچه ها رو صدا میزنن پیانبر هم صدا میزنن خلاصه اینو تقسیمش میکنیم بین خودمون بعد پیامبر میان پیش عبدالمطلب رحمت الله علیه این تاجره میاد پیش بزرگ مکی عبدالمطلب میگه آره من همچین کیسه پولی داشتم گم کردم پیانبر صلی اللہ علیه سلم میفرمن که این کیسه پول پیش بچه هاست لذا بهبد مطلب میگه بچه ها رو صدا میزنن هر حضور شما که بعد کیسه پول رو نمیگه بچه ها دزدی کرده تقسیم میکن میگه بیشه بچه هاست کیسه پول میارن و آها به بچه ها میگه من گفتم و بیا بدید هر بهش اراال میکنن چه رفتی گفتی و بهعمل کار درسته نیسته ببینید دوزدیه. تو توسه کودکی پول رو که میارن این تاجر که این بچه رو میبینه آبروی بچه ها رو پیانبر نمیبره تاجر خوشحال میشه به هر کد این بچه های از اون کیسه بولی که یه سکه میده پیامبر بعد از که این تاجر میره به بچه ها میگه که بچه ها این کار بهتر بود یا اون کار ببینه از سابقه های زندگی پیانبر از در زندگی سن کودکی، حالا چه برسیدیم یه بالتر این سابقه و پیشینه رو دارن کیا همون بچه هایی که بعدها بزرگ میشن؟ و به یاد میارن که پیامبر چون با عقلشون میفهم این کار زشت بود میفهم متوجه میشن که عجب عجب پیامبر مقام بیرفتی نیست از ابتدا این شخصیت شخصیتی اصلا برجسته و فریخته یا انتخاب شده خدای متعال هستش با. خب ما اگه میخوایم وارد بحث دیگه بشین فقط یکی دو تا شبه ها تو جواب بدم من که حالا که سوالاتی بمونه با سال دیگه نیستش خانم مایه ندارن سوالی بله بفرمین بله این دامنه بله یارانش نشده نه بله بله. بله. قیامت در بعد رسالتشون به اینها متذکر شدن که منو میشناسین من کیم گفتن محمد امینی بعد از من دروغی دیدین منو تا چه حد قبول دارین گفتن تو صدیق و راستگوی. فرمود که اگه به شما بگم که الان یه لشگری در پشت کوه احده فردا صبح مکه حمله میکنه قبول می‌کنین؟ گفتن آره، اینقدر تو رو قبولت داری پیامبر فقط بدانید من رسول خدای یکتا هستم و شما رو انذار و خبر میکنم از معاد و جهان آخرت و تذکرات به نبوتشون و بندگی خدا. چرا خود پیامبر تذکر می‌دادن؟ می‌فهمان منو که می‌شناسید. نه تنها پیامبر شما نگفت جانشینان پیامبرم این کار میفرمودن یعنی امیرالمومنین چقدر برای اثبات حقانه تو خودشون فرموده من اون کسی نیستم اون شدوکم بالله اون شدوکم بالله قسمتون میدم به خدا قسمتون میدم به خدا من اون کسی نیستم پیامبر در شان من اینطوری گفت من اون کسی نیستم که آیات درباره من نازل شد عین همین رو امام حسن و این همین رو امام حسین رو در روز رو انجام دادن مثلا کسی جز من هست که پسر رسول خدا باشه و حجت خدا باشه سبت اکبر و سفتر اکبر پیامبر صلی الله علیه و سلم باشه به عمر ابن سعد و دیگران آیا من حلالی ای رو حرام کردم؟ حرومی رو حلال کردم؟ من عنب رسول الله، عنب نو علی بن مرتضی، فاطمت از فاطمه زهرا بعد از خود امام سجاد ببینید چجوری در اثبات مقام و به اسمت و پاکی و, و تو خودشون صحبت کردن ولی انسان‌ها زیر بار حق رفتند چرا تذکر می‌دادم؟ بر زیره بار حق نمی اون کسانی که مثل عمارها یاسرها بوزرها سلمانها بله بله یعنی این 500 قرآنمون هم هست دیگه که اینها در واقع حقانیت پیامبر رو میدیدن و من اعرض انذکری ذكري دقیقاً این آیه 124 سوره است أعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من أعرض عن الذکر فإن له معیشة زانکه ونحشره یوم القیامة عما هر کسی اعراض از ذکر ما اعراض رو برگردونه رو برگردوندن اعراض از ذکر ما کنه ما زندگیشو زنگ میکنیم ما زندگیشو تنگ میکنین معیشتشو که تاثیر ربات که هم معیشت دنیاشو هم برزخشو هم آخرتشو و روز قیامت کور محشورش میکنین کسی که از ذکر ما بعد ذهلی رواد نگاه کنید که فرمودن مستاق ذکر وجود مقدس محمد صلی علیه و وسلم و اهل بیت اسمت علیه السلام هستن کسی که پیامبر و اهل بیت اسمت علیه السلام روبرگردونه این حقانه تونها رو فهمیده روبرگردونه و خدا او رو دل میکنه و روز قیامت بروز این کوردلی اینه که کور محشور میشه بعد به خدا میگه که لما هشرتنی اعما وقت کنتو بسیرا چرا منو کور محشور کردی در حالی که من بینا بودم جواب میاد که تو کسی بودی که در دنیا آیاتا که ما اومد رو برگردوندی قفلت کردی امروز ما تو رو مرد فراموشی قرار میدیم دقیقا فهم یا آیه دیگه در سوره زخرف سی و چهار و من شوان ذکر رحمان از لهو شیطانا و هوه لهو قرین کسی که رو برگردونه و من نقایز ل... ببخشین و من یعشو ذکر رحمان کسی که از ذکر رحمان فهمده ذکر رحمان وجود آس پیان بره صلی اللہ علیہ وسلم. و احل بیت اسمتن سلام. کسی یعشو یعشو هم این اعراض است رو برگردونه حقانویتشون رو میبینه قبول نکنه خدا شیطان و شیاطین رو قرین رو عباد میفرمید پس معلومه که اثبات حقانیت رخ میده حالا این انسان ها یا به ادابت یا جهالت قرض و مرض و هر چی اسمش رو بخوایم بذاریم نمیپذیرند نمیپذیرن ب دیگه سالی دیگه هستش عرض و حضور شما که در این وقتی کمی که باقی مونده یکی از اون شبهاتی که دفعه گذشته در باب نوبود و وجدت که زالن فهدارو توضیح دادی یادشون هست خانم آیون که به وجهتی که زالن فهدا به چه معنا بود بفرمی اگه یادتون هست بفرمی کسی یادش هست اصلا معنی شنی چی خب چی جور معنا شده؟ ما اون چی فرمودم چون آیا را بخواییم ظاهر معنا کنی میشه به وجهتی که زالن فهدا در سوره زهرا آیه هفت یعنی پیامبر تو رو زال و گمراه یافتین و هدایتت کردی. و این نمیخوره با مبانی اعادی ولی این برای اهل سنت قابل قبوله چون پیامبر رو قبل از نبوت زال میدونن اما برای ما چی امام صادق فرمودن صلوات الله که آها مردم یافتن تو را گوهره گم شده ای بودی گوهری گم شده ای بودی که مردم تو را یافتن پس هدایت شدن به واسطه تو چه افتاد؟ وجدا مردومن و وجده که چون این خیلی مهمه آیت و قرآن رو همینجوری به این راحتی نیست همین میخوام بگم آیت قرآن به این راحتی نیست راجبش زود ترجمه کنین و وجده که زالن پس یافتن مردم تو را گوهر گم شده ای که پیداد کردن فهدا پس به واسه تو هدایت شدن این یکی از اون چی رو؟ من مرنه که نگه امام صادق رو فرمودن فهده هدایت شدند هدایه هدایت شدند هدا یه هدا بله هدایت شدند بله بله هدایت شدند یکی دیگه از اون آیاتی که ارزوزوی شما که محل بحث بحث آیه اول سوره مبارکه فتحه بسم الله الرحمن رحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَنْ مُبِينَا اِنَّا فَتْحْنَا لَكَ مَا تَقَدْنَ مَنْزَمْ وَمَا تَأَخْخَرْ ما فتح مبین برای تو عاشقار کردیم که خدا گناهان گذشته باقیدن دیتو را قفر را ببخشد خواه این چجوری میشه ما؟ اینه از آیات شبهات نبوبته همه حالت بحت من را نگاه میکنیده <تصفيق> در پاسم امام ساده علیه السلام و امی ما فرمودن که خدا به فتح آشکاری که برای تو ای پیامبر قرار داد در مکه گناهانی را که ببینیم خیلی مهمه که مرجع زمیر و خود زمیر و کلمات رو خدای مطار چی اراده کرده و الا از خودم با خیلی سی داره با هم همه انا ترجمه کنی به همین اشتباهات میفتیم خدا پیامبر برای تو فتح مبین و آشکار قرار داد که به واسطه این فتح مبین و آشکار لیقفر الله لکه ماعتقدتم مندمبگ و ماتاخر خدا گناهان گذشته و آینده یعنی گناهانی که به تو انتصاب می دادن مردمکه و انسانهاي بعدي بعدی که تو پیغبر نیستی تو از سوی خدا نیستی اون گناهانی که اونا بهت میگفتن مجنونی بهت میگفتن ساهری بهت میگفتن سوی خدا نیستی دینه ساختگیه اینها را پاک کرد برای تو به این فتح آشگار جا افتاد مثاله نه اینکه که پیغمبر گناه دارن زن با به کی برگردوندن به مردم و اون تهمت هایی که به پیغمبر میزدن آه مجرم میدونستان و زنب او قرار داده بودن به انسانایی که بعد از پیامبر میخوام بیان به این گناه رو کم که الان هم دارن میگن دیگه که قرآن ساختگی آیت شیطانیه نمیدونم پیامبر عزادور شما که این چرت و پرتایی که الان هم میشن پیامبر در واقع برای خودش اگه وحی بوده شخصی بوده حالا و از این حرفا بله اینم یکی دیگه از اون شبهات بحث نبوود حالا چون وقت ما تمام ما تاب وقت بعد هشت 8 مباست دیگه ایتون رو باید هست که حالا ما باید میمونه که مثلا حفوات انبیاء بعد مثلا ما رو حضرت آدم رو توضیح بدیم حضرت ایسار حضرت موسیارو رو توضیح بدیم که آیاتی شپناکی در قرآن هستش حضرت ابراهیم توضیح بدیم مثلا ما رو حضرت ابراهیم بگم حداقل دقیقا در مورد حضرت ابراهیم این آیه هستش که حضرت ابراهیم علیه السلام به خدا گفت که بله کیف خدای تو چجوری مرده ها رو زندگی میکنی؟ اولم تو،, تو اومن؟ تو اومن؟ اگه تو ایمان نی بردی؟ خدا وزرط ابراهیم تو آیست؟ حضرت ابراهیم گفت بلا لیتمن لقلبی چرا؟ ولی برای اطمینان قلبم دارم اینو میخوام ماشون نگوان زیل این آیه چیا گفتن؟ زیل آیه به اشتباه چیا گفتن؟ که حضرت ابراهیم خلاصه به تومنین قلبیه المنی یقین رسیده بود اما به عین یقین نرسیده بود اینجوری باز اینجوری گفتن اما این که سوال هست که حضرت ابراهیم با این مقام اولا تومن آیه ایمان نیوردی چرا ولی میخوام اطمینان قلبی پیدا کنم یعنی حضرت ابراهیم به اطمینان قلبی نرسیده بود جواب بدید جواب بدید بینه ببینن. این یه مقداری برای مقام نبوت به نظر من دیگه نبوت به این مقام رسیده بود باشه که بابا انقدر پیامبر دیگه خدا بدون خدا چه جوری ها رو زنده می کند من فکر میکنه حالا یه بیان میان اینجوری میگم دیگه میگن در واقع میخواد کیفت وحی الموتار به اطمینان قلبی برسد اما امام صادق ما سلام الله میفرمان که خدا از طریق به جناب ابراهیم خبر داده بود که عرض بزرگ شما اون کسی خلیل خدا میشه خلیل خداست که خدا برای او مرده ها رو زنده میکنه حضرت ابراهیم علی سلام فرمودن که اطمینان قلبی به خلت نداش یعنی چی به اینکه او خلیل اللهه که او خلیل خداست اینه اطمینان نداشت که خودشه لذا برای اطمینان میدونست که شرط خدا اینه که خدا برای خلیلش مردر زنده میکنه وقتی این سوال کرد که برای اینکه من میخوام چجوری مردر زنده میکنی برای اینکه حضرت فهمه بخواد به خاطر اینکه به اطمینان برسه که خودشون خلیل اللهه این چقدر فرق میکنه خیلی جالبه ها برای همین باید سراغ معصوم رفت سروتعلم مجموعهین تازه ما انشاالله داعا کنین امام از سروتلت ظهور کنن حالا باب های بیشتری از معارف قرآن باز میشه که معلم واقعی همانا اهل اهلبهتان سلام و انشاالله تبلورش در وجود مقدس امام از اراننا فدا هست که خدا به حرمت قرآن که در دعا می خونیم اللهم احیه به ولی کل قرآن خدای از زنده کن و یاکن قرآنت را به ولیت. که این گونه معارف arz حضور شما که احیا بشه باران ممنون شما هستیم که در این چند جلسه در بحث نبوت در خدمتون بودیم حالا اگر زمان دیگری بود انشالله توفیق بود شاید بحث نبوت مثلا بعضی بحث‌های باقی مانده شام کنیم خدمتون ولی توصیه‌تن فعلا این کتاب رو معرفی کردم که حتما این کتاب رو تهیه بفرمایید و مطالعه بفرمایید که خیلی کمک میکنه به شما و در کنارش قطعا روایاتی که در این باب هست و اگر شبهی در بحث یا نکتهی بود حتما مراجعه کنید به کلام معصومان امسان رو بپرسیم یقینا پیامبران الهی و اوسیه اونها و انبیاء معصومن یقینا معصومن یعنی گناه نمی به گناه نمی اندازن. اشتباه نمی کنن به اشتباه ها نمی اندازن. حالا میبونه این طرف حالا ما این آیاتی این طوری میبینیم پس باید چی فرمودن. که مناظره های امام رضا سلام با معمون جواب دادن همین شبهاته. که حضرت یوسفش هم اینجا گفتم من. شبهه ای گفتم حضرت یوسف بود تو دو یا سه جلسه قبل من گفتم که محمدبی و همه به حال لا لا را برهان ربه کذالکل نصر فن و سو اول فحشا انه بمن عبادنا المخلصین. اینم توضیح دادم که امام بزرگوار السلام در سوالی که معمون که شوبه وارد میکرد به اسمت حضرت یوسف علیه السلام این رو هم توضیح دادن حزا چی فرمودن و این گزده موسی اون قبطی رو کشت و بعد گفت فخفلی زنم تو نفسی اینا حزا توضیح فرمودن چیه همچنین در مورد حضرت آدم علیه السلام و همچنین حتما باید که خلاصه به معصومین علیهم السلام و در این باب حتما به مناظرات امام رضا علیه السلام با معمون مراجعه بفرمید شبهات در بحث نبوت رو خیلی انشااءالله بهتر میتونید پاسخکو باشه برای شما یقینا ممنون شما هستم و اگر هر روز کوتاهی بوده یا قصوری در کلام بنده بوده ببخشید و خدا انشالله به محمد عالی محمد این روز اخیره شب اول قبل روز قیامت ما قرار بدیم مجالس رو و در جنبه فهمیدن هرچی دقیقتر معارف الهی و فهماندنش به دیگران ما رو موفق بدارد و از خدا می که خدا به حرمت نوویش و وسیش و به حرمت این شب از این شب دحول عرض هست و اگه که زیارت خاص امام رضا سنا سلام به تعبیری فردا هم روز زیارت خاصه حضرت هست خدا به حرمت علی ابن موسر رضا علیه سلام قصمش میدهیم که امر ظهور مفروس سرور امام اسعر و رو همین لحظه انشاءالله خدای متعال انشاءالله همین لحظه برای ما مقدر بگرداند و ما را در زمره یاوران و حضرت قرار بدهد و صلی الله علیه محمد و آل طیبین طاهرین اللهم صل علی